بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وخاتم النبيين وأله والصحب يجمعين أما بعد هفتمين حديث از كتاب شامويلة ترمزي رحمه الله واسكنه فسيح جناته ميقياد حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغطي ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القططي ولا بالسبطي كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهي تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتدي أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صباب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأليانهم عريكة وأكرمهم عشرة من رأاه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله خب آخرش که لازم نیست جاسخ خانه خودمون یه بعضی از الفاظ را شرح میده که انشالله در ضمن شرح خواهیم بود. این حدیث درش ضعف هست. حدیث درش ضعف هست. دو تا ضعف هست. ضعف اول عمر ابن عبدالله هست توی اسناد مولا غفره. این درش ضعفه یک ضعف اولیش ولی خب ضعفش شدید نیست که قابل ارتقانه باشه. چون بیشتر این مطالبی که الان تو این حدیث داریم در آحادیث قبلی داشتیم و در آحادیث ما بعدم خواهدومد. یعنی ضعف شدید نیست نيسوسان امت اون مسائلی که درش اومده مباحثی که از وصف رسول الله صلی الله همشون قرائن داره که تقویت میشه ضعف دوم ابراهیم هست ابراهیم بن محمد ابراهیم بن محمد ابن الحنفيه محمد که پدرشه این ابراهیم محمد بن الحنفيه فرزند علی بن ابی طالبه که ابن مادرش نسبت داده میشه چون حنفيه کیه کنیز علی بن ابی که این محمد از این مادره از این کنیز علی بن ابی طالب هم التقای او ملاقات او با علی بن نبی طالب ثابت نیستن اینکه این حدیث را شنیده باشه ما دلیلی روش نداریم چون محدثین توی بحث اتصال اسناد که شرط صحت روایت دقت میکنه که آقا فلانی با فلانی ملاقات داشته یا نه درست نوشه که دلیل بر این نیست چون نوشه از شنیده باشه خصوصا اینکه نوش کی به دنیا آمده بعد از وفات علی بن نبی طالب نوش ابراهیم محمد کی به دنیا بعد از وفات پدر بزرگش خب حالا این داره میگه پدر بزرگم اینجنی حرفی زده خب تو بعداً به دنیا آمدی چطور داری این نیرو تو داری میگی احتمال هست از پدرش یا از عمویش از کسی از دور بر اعظم کسی شنیده باشه این احتمال هست ولی کن چی سند ضعیفه ما کاری نداریم والا نوی علی نبی طه هر کسی هست این سنده وصل نیست متصل نیست چون این دو نفر از هم دیگه نشیده. ولی خب گفتم اون چیزی که تو این متن داریم تو این متن روایت خواهیم خوند توی حدیث ك... ما قبل داشت به همین تکرار میکنیم که هم اینکه ما بعض از کلمات و سلاحات را یاد بگیریم هم اینکه اون مباحثی که داشتیم توی حدیث قبلی در ذهن ما تکرار بشه و ثبت بشه خب بریم به این حدیث از علی بن ابی طالب که وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم می اولین وصف لم يكن رسول الله صل الله علیه و سلم ممغط بطویل یعنی رسول الله صلی علیه و قد بلند زیاد نبود قد بلند زیاد شدید شدت نداشت اون بلندیش یعنی خیلی زیادم بلند نبود قدش بلند بوده ولی نه زیاد قدش بلند بود ولی نه زیاد دقت بکنی تو این قد بلندی چنانچه در حدیث انسی داشتیم صحیح ليس بالطويل البائن خیلی قد بلند نبود، قدش بلند بود ولی خیلی نه چون بعضی از صحابه مثل خالد بن ولید و عمرو بن خطاب زمانی که سوار اسب میشدن دو تا پاهاشون به زمین می‌رسید قدشون زیاد بلند بود نه خیلی زیاد بلنده در نظر بگی اصم. سوار که میشدن قاشو زمین بودن این اینقد بس شده از قد بلندیشون یعنی از درازیشون خب پس رسول الله صلی الله علیه و قدش زیاد بلند نبود بالطویل الممغط یعنی خیلی زیاد انقماط به معنای طول زیادیه دوم این ولا بالقصير المتردد و نهم قدش کوتاه قدش کوتاه قصير یعنی کوتاه متردد یعنی قد کوتاه اینطوری نبود رسول الله صلی الله علیه و سوم بس و كان رابعتن چارشونه بود وسطتم بود چارشونه یعنی قدش به بلندی گفتی قد بلند بود ولی خوب خیلی دراز نبود خیلی بلند نبود چارشونه هم بود کان را تم من القوم از بین مردم طولش وسط بود هرچند که گفتم به بلندین نزدیک تر بود قد کوتاه که اصلا نبود چارمی بس ولا یکن بالجعد القطط ولا بالصبطی ثبتی باز همه وصفها ها قبلا اومده ربع مثلا اومدی بود که خصاس هم چهارشونه بود از وسط بلندیش بعد وصف شونه بعد وصف موهاش. رسول هسته زیاد فر نبود جیغ او چی بهش میدم موه های وزوزی زیاد نداشت و نه هم موهاش صاف و لخته نبود بلکه یک انعطافی برای خودش داشت موهاش یه فری کوچکی داشت برای خودش ولا به صبط صبط های لخته موه های رسول هسته هم وسط بود خصوصا اینکه بعضی از فرها حسر بزرگ میکنه رسول اساس هم اینطوری نبود خصوصا میاد در وصف موهای رسول اساس هم همطور که ابن قیم میگه موهاش بود گاهی حسین قبلا موهاشو همه عقب میبافت بعدا دیگه موهاشو به بغل میانداخت فرق میکرد هر دوتا بس اومده در وصف موی رسول اساس هم گاهی اینطوری فرق میکرد به دو طرفش میانداخت و گاهی هم رسول اساس هم موهاشو عقب میبرد به عقب میانداخت پنجمین وصف کان جعدا رجلا واسه موی رسول الله صلی الله علیه و سلام که موش کمی برای خودش انعطاف داشت کمی فر یعنی وسط بود یعنی نه بود و نه هم وزوزی زیاد شیشو می وسط ولم یکم بالمقهمی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چاق نبود پر بوده و میاد وسطش ولی چاق نبود حالا بس في شکمش هم میاد بس في سینه هاش هم میاد تو پر بود و سخوناش درش بود قوی بود ولی که این که شکمش بزرگ باشه اینکه چاق باشه نه رسول الله الله چاق نبود حفتوبین وسط ولا بالمکلفم چهرش سر رسول الله صلی الله علیه و آله نبود گرد نبود مکلفم یعنی دایری و نه هم کشیده حالا میاد وسطش نه کشیده بود و نه دایری وسط بود چهره رسول الله صلی الله علیه و آله رخصارش نه کشیده و نه هم گرد و دایره جنات در بعض از روایت اومده و کان فی وجهی تدویر بگلد نزیتر بود چون سر از بزرگ بود کوچک نبود بگردی نزیب تر بود و وصفش میکنن همچون ماه بود علاوه هر که اون نسبت تابش و و نورانی بودنش هشتمین وصف ابیض و مشرب. سفیدیش خالص نبود سفیدی مائل به سبزیگی. سفیدی مائل به سبزیگی. چنانچه چه قبلا نم داشت ليس الامهق یعنی اون سفیدی خالص نبود بلکه سفیدی مائل به سبزیگی. و خصوصا در چهره الرسول اساسا سرخی بود اونهاش سرخ می شد، سرخ میشد نه اینکه همیشه ولی خب منظور که مایل به سرخی بود چهرهی را الله مایل به سرخی بود بخاری هم در بعض از روایات قبلا داشتیم ازهر اللون ازهر اللون یعنی چهره اش به سرخی نزدیک بود چهره رسول الله یعنی سفیدی مایل به سرخی یا کمی مایل به سبزیگی یعنی یعنی این سرخی شما در بعض اشخاص شما میبینید بسگی داره روز شب زیر آفتاب زیر آفتاب نیست این رنگ عوض میشه یعنی نهمین و دهمین ده نسبت به چشمانش. چشمان رسول الله صلی الله علیه چشم رسول الله سیا بود مردمکش و قوله دهمی اهدب الاشفار اهدب الاشفار مو هي پلکه موجهه ها است موجهه های رسول الله بلند بود اهدب الاشفار اون مو های اموجهای پلک چشمش بلند بود یازمی بس جلیل المشاش والكد جلیل المشاش قبلا داشتیم بازه سر سکوناش مفصلهاش بزرگ بود کوچک نبود نشانه قدرت. قبلند داشتیم ضخم الکرادیس مفصلهاش بزرگ بود کوچک نبود نشانه قدرت تنومندی رسول الله صلی الله عليه و سلم. والکتد شناهس از این سناری بین شناها جلیل الکتدی رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ بود چارشونه بود. قبلند داشتیم بعید و ما بین المان کبین شناهاش وسیع بود و سعده عزیز بود. الو گفتیم تو اصطلاح بخوام بگیم مأمونی چیزی که مشهور چارشونه بود میان نشانه هاش فاصله داشته نشانه هاش عریض بود دوازدهمی بس که در این حدیث اومده اجرد اجرد مخالف اشعره بدنش بود نبود مو بود مو نداشت الا بعضی جاهای بدنش وسط سینه موی کمی روی دستا بعضی هاش موی کمی موی کمی نه موی زیاد حسان گفتیم روی شکمش اینا مو نه فقط وسط سینه‌ش یه خطی تا یه خط خفیفی بس اجرد بدنین بدون مو بود موش کم بود نه که بدون مو بود کامل نه بدنش یعنی کم مو بود پرپشتگی تو موهاش نبود مثل بعضی میبرید سینه‌اش پر مو هست در رسول الله صلی الله علیه و موهای بدنش کم بود خصوصا پاها سینه ها دست ها دستاش پر نبود رو مسروبه مسروبه قبلا گفتیم موی سینه هست موی سینه داشت ولی خب باریک بود که کم بود شسن الكفين والقدمین که قبلا بیان شد رسول الله کف دستش گنده بود بزرگ بود قچیت نبود، ریز نبود کف دستش باز و همچنین نرم نرمی تو دستش بود و کف دستش بزرگ بود و همچنین پاهاش 14 همین وصف که تو این حدیث اومده ادرا مشه تقلع اگر راه میرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم انگار از زمین بلند میشه و پا رو بلند میکرد بس بعضی دیدید سنشون بالا میره پا رو میکشن از خستگی از سن بالا نه رسول الله صلی الله علیه و سلم قوی بود پا رو با قدرت بلند میکرد یعنی این قدرت این توانمندی و تنومندی در رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدی. وقتی که راه میرفت پا پا از زمین بر داشت. زور داشت ش قدرت قوتی قبلا هم این میاد شد. که اننمماین حد دوف انگار که داره از سراشیبی میاد پایین سراشیبیه انگار داره میاد پایین سرم پایین میداخت والا نگاه نمیکرد. کهنممانحق انگار که داره پایین میاد پا رو هم بر پا محکم بر میاشت. میاد در وصف اینکه خود راه رفتن را عم اگر کسی هم همرااش بود چطور بود. پانزهم و اذا التفت التفت اگر نگاه می کرد سرشو چرخ نمیداد با کسی حرف بزنه بلکه تنشو چرخ می‌داد با تن میچرخید طرف شخص روبرو می ایستاد با احترام با عزت باش حرف می‌زد یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت میداد به اون شخص مخاطبش اینطوری نبود که که با کبر و غرور مثلا یک طرف نگاه بکنه یا مثلا بی اهمیت باشه به طرف نه این نشانه اجلاعه تکریم طرف مقابله شخص قدرم میکرد از وقت خودش میداد و قشنگ میساد باعش صحبت میکرد این نشانه وقاره شخصیت شخصیت رسولالله صلی الله علیه و سلم اینطوری بود. یه بعضی از جا جاهای انسان حرکتیه متوجهش نیست ولی اون طرف مقابل داره به دل میگیره اون طرف مقابل داره بد میبره این چرا اینطوری نگام کرد؟ من رفته در خونش اینطور سرچوب پایینه دخ نه خم بابروه نه نمیدونم جوابم اینطوری داد زنگ زدم تحویلم نگرفت شیطان از هر دری وارد میشه. اینی که اینجا علی بن ابی طالب رضی الله عنه دری بس میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی باش حرف میزد با توجه حرفشو گوش میداد و می ایستاد جلوش باش حرف میزد بدون کبر بدون غرور این نشانه تواضع رسول الله صلی الله عليه و سلم اون زخمی باشه که در این حدیث اومده بین کتفهای خاتم النبوه میانه دو تا شونه های رسول الله صلی الله علیه و سلم از پشت که گوشتی بود که ختم نبوت بود که نشانه یک گوشت بارزی بود بین دوتا شانه های رسول الله صلی مشخص بود از اخر اما چرا در حدیث سلمان فارسی اومده که اومدم و گشتم و میفهمیدم که این وصف نبوت و دنبالش بودم که این خاتم این نشانه و مهر نبوت را ببینم مهر نبوتی بود که که پیغمبران پیشین وصف کردند که خاتم النبیین اون خاتم الانبیا که خواهد اومد آخرین پیغمبر این چنین وصفی داره که گوشتی هست که نشانه ختم نبوتشه حالا ما چون ندیدیم ما نمیتونیم وصفش بکنیم که چطوری بوده چی بوده و فقط میدونیم که یک نشانه ای هست بر دوش رسول الله صلی الله گشتی بوده و هو خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه نبوت باهاش خاتمه یافته پیغمبری باهاش خاتمه یافته چون آخرین پیغمبری که پیغمبری دیگه بعد از اون نیست مکن محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و وخاتم النبیین خاتم النبیین پیغمبر علیه الصلاه و السلام نبوت باهاش خاتمه یافت دیگه پیغمبری بعد از اون یک گمرایی در پاکستان و هند ظهور پیدا میکنه اسمش غلام میرزا هست غلام میرزا احمد قادیانی اومد گفت که این آیه الله جل وعلا داره میگه به پیغمبرش که تو انگشتر پیغمبرانی خاتم النبیین نه خاتم خاتم النبیین خاتم النبیین النبی قرآن رو تحریف میکنه بعد میگه مثلا هم که جلویشان که نمیدونن کی که چی داره میگه و این پیغمبر چون انگشتر پیغمبران پیشین بوده این انگشتر الان به من رسیده منم انگشتری انگشتر پیغمبرانم منم پیغمبرم بر رحمت میشه کانال دارن برای خودش، کله اخو... هم طرفدار داره تو اسرائیل، دفتر دارن برای خودش و با... کلی طرفدار دارن فرقه احمدیه که الا رهبرشون در هند پاکستان هلاک شده مرده چه جنزدی بوده لخت میخوابیده سر پشت بوم نمیدونم میگفت که مثلا از حرفاش خداوند با زبان انگلیسی داره با من صحبت میکنه بر ور وای میکنه شخصی گمراهی بوده ولی خب میگم یعنی سبحان الله کسی که عربی بلد نیست چگونه گمراه میشه با یک دجال و کذابی مثل این مثل مسلمه کزا این سفری بشون میخوره چون لغت بلد نیست عربی بلد نیست چون با اهل علم نشنسه هایی که تقوای الله رو دارن اونایی که از الله می ترسه. ابتدا هم می واسه که در این حدیث اومده اجود الناس صدرا. رسول صل الله صلی الله علیه و سلم سیناش باز بودین بس وصف اخلاقشه. ساعت صد داشت گفتیم در قرآن الله جل وعلا مت هر رسول الله رسول الله علیه میکنه. الم ناش رح لك صدرك؟ که سیناتو باز نگه نك داری، نگوشودیم. این گوش دیگه چطور مثال بزنیم؟ گفتیم رسول صل الله صلی الله علیه و سلم اهل ما کی ميزانانش. احلم ما اصحاب در در میکنن، شکنجه میدن، میکشن. بسری یاسر چی در آوردن؟ بسر بلال با اون شکنجه ها فراری شدن رفتن خودش تک تنها بود و برگشت رسیدی در اوج دلتنگی میره طائف ماهم سنگش میاد زیر درخت فرشته کوها میاد بسایا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوهای مکه را به هم بزنم بخشبین رو بکوبم به هم مکه رو به هم بزنم نابودشون کنم ناراحته از محبتش به رسول الله صلی الله سر صورتش با سنگش زدن چی کرد مگه آزارشون داده دل سوشن بوده رفته دعوتشون داده اونها رو بیاد اخرت انداخته همین حرف دیگه‌ای که نداش رسول الله صلی ولی با این وجود گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله چی سینش بازه شاید از نسلشون کسی بیا سربازی دیو الله بزاره. شاید از نسلینا کسی بی یه خوب باشه. خوشبینه <تصحب> کی نه قدرت ای تو دلش است بزر زدن بیرونش کردن و اله اخر شکنجهش دادن خودش و یارانش ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و آله اجود الناس صدرا چوتش کرم داشت سیناش باز بود بس به خداوندی چی؟ الم نشر حدا اینا انشرا الصادق. این جود و کرمه این بخشش این سخاوتمندی. سخی بود در اخلاقش، در رفتارش، سخاوتمندی. نهایت اجود الناس. سخاوتمندترین مردم از لحاظ چی بود؟ سینه و گشودگی و دلبازی، دلش باز بود. دلتنگ و دل کوچیک نبود. دل نازک نبود، دلش بزرگ بود این متا. دلت کوچیک نباشه چون دلت اگه کوچک شد چی میشی؟ انسان کینه‌ای، بغزی، کدورتی، با این مشکل داری، با اون مشکل داری، کسی جرأت نداره به چیزی بگه، هر حرفی بهت زدن دلتنگ میشی، گوشه‌گیر میشی و به دل میگیری، الی آخر یک انسان افسرده روانی. رسول اعظم صلی الله علیه و ابداً یک انسان اجتماعی، یک انسان سینه باز، اون انشراح صدرش با اون خوبی و بخششش سخاوتمند بود. این این سخاوتمندی نه فقط به مالش در اخلاقش تواضعش بگه فلانی فلانی به بهم بدی کرده فلانی مال مالو خورده فلانی نمیدارم صداش رو من بالا رفته فلانی نمیدارم پشت من غیبت کرده این چینی چیزی شما در رسول الله صلی الله علیه وسلم آله ندارید وصف جواد بودنشو میکنه وصف سخاوتمندی در اخلاقش در گذشتهش اکرم الناس اکرم الناس یعنی بخشایندترین مردم بود در بخششش از حق خودش گذشت بکنه در بخشش حققت پایمال شده بدی بهت شده ببخش نه که از باب تصنع خودش این کارو بکنه نه طبیعت و خصلتی بود سرشتی بود که الله جل وعلا درش گذشت بنابراین این منته رو برش میذاره در قرآن و یاد میکنه از این واسه الم نشرح لك صدرك نمون بودیم مگه این چینی سینه ای بهت دادیم گشوت وباس 18 بس که در این حدیث اومده و اصدق الناس لهجه زبان صادقی داشت حرف راستی میزد میگن حرف راست تو بزن حرف راست رو را میزد حرف درست رو میزد چون بعضیا لاف میزنن بعضیا علکی از خودشون تعریف میکنه؟ نشستم مو رفتیم فلان جا فلان کار کردیم فلان کردیم لاف میزنن چهار تا دروغ سر هم میکنه میخواد یک خودنمایی بکنه از خودش بگه یا از قوم و بگه پدران ما اینطوری بودن فلان اینطوری کرده هیچ ربطی هم نداره هیچ هم توش نیست ولی میخواد خودنمایی بکنه رسول الله اینطوری حرف کمی میزد با سبانی راست و راستگویی و صادقی صادق بود در حرفش در اون سخنش نوزاهام این واسه دارین حدیث اومده و هم عاریکه عاریکه تبعیت سرشت سرشت نرمی داشت تون خوب و تون مزاج نبود رسول الله هم الله و نرم بود وصفی که هست که رسول الله صلی الله توصیه میکنه ما را برش یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله هاش المؤمنون هینون لینون مؤمن هینه نرمه لینون نرم و خوشبو هست خوش رفتاره بس میکنه در روایت دیگر میگه کل جمل الان فدر روایت الالف این منقیدا مثل مسی شطور رامیه که اگر به مورچه هم بهش ببندی مورچه بر اینورم میره به طرفش یعنی گوشش به هر طرف مقابله یعنی توازن داره حرفو خسمش یا کسی که باش مشکل داره میشنوه ناگهان یک جو این شخص میخواد خودشو خالی کنه خصوصا زنها یکی از درد های زنات خوونه همینه کسی ندارن که حرف دلشونو باش بزنن خالی کن خودشونو حسن زنا بیشتر حالا ما مردم همین تو رسیم. نیاز داره اون زن که خودشو خالی بکنه حالاکی کجا خودشو خالی بکنه؟ کسی بهش حق بده یا درکش بکنه که بگه بله حق بله توست بله تو راست میگه بله الله آخر این دلداری بشه. خب نیاز داره که یک شخصی بهش بیاد تا بکنه وقت خودشو براش بزارره ماهها مردم این حوصله رو نداریم برو با تو هم دیگه من خودم گرفتار خود. من وقت خودم او در دیگه بیام. ولول های تو گوش بده. درست ولوله بسیار پای حرفش بشی مثل این وصفی باش که رسول الله سلام را می المؤمن المؤمنو کالجملی الالف و در الانف این من قیدن قاد نر باش باش نباش برخورد نکن خشن نباش این نشانه گفتم تواضع رسول الله الله علیه و عدم خشونتش ولو کنت فضا غلیظ القلب لن من حولك و كنت فضلا غريضا القلب قال سنگ دل و سخت بوده كسي كناره نمنشست انسان سنگ دل و سخت و خشك كسي رو نميخواد اصلا كناره نميشينه انسان متكبر مغرور خدخوا خدبين كسي كناره نميشينه بس في كدنين حديثات سمدل و اكرامهم عشرة معاشراتش رفاقتش مصاحباتش بهترين بود الله اکبر دولت فی داش یک کرمی داش یک مردانگی داش رسول الله صلی الله عليه و سلام قول امروزی رفیق پایه بود رفیق پایه و با. اصحابش هم اینطوری بودن شما در نظر میگیرید رسول الله میخواد هجرت بکنن از مکه به مدینه ها با پایه برین او با خوشحال میشم الان من لفظ امروزی دارم به کار می برم خب لفظ اینطوری نیست رسول الله خب میگرش میای با من همراه من بشی همراهی کنی گفتم لفظ امروزی یعنی پایه ای با من بیای امینا عویشه می دیمونه من گاهی تو عمرم عشق خوشحالی ندیدم. او بگر صدیق را دیدم رضی الله عن پدرم که عشق سرسر از چشه شداره میاد پایید از خوشحالی. الله لیاقت من را دونسته که رفیقش بشم. خیلی حرف ها از آسمان هفتم الله بحیم بکنه قابلش بدونه رفیق اشرف خلق بشه. والله خوشحالی داره والله عشق داره. الله لیاقتش دونسته. این رفاقت را یاد گرفتن از هم دیگر. خوشحال گرافیک پایش بذارام کشته بشه اومده برای اینکه محافظ باشه یاره اون محمد مصطفی باشه علیه صلوات و شرف این از ایمانه این از ایمان رسول الله اینطوری بود و اصحابش هم اینطوری یاد گرفته بودن نه مثل الان طرف میخواد بره مسافرت ناز میکنه نه منگه فردا کار دارم من میخواد در بره یعنی چیزی به اسم رفاقت گذشت از وقت دادن اکرام کردن الا به پای دوست رفیق ایستادن نه این این مرام ها دیگه توش نیست این یار و یاری دیگه توش نیست همش خودخواهیه همش خودم خودمه دنیای امروزی یاد دادن متاسفانه به ما کاری کردن که اینطوری باشید برادر کنار برادرش نیست خواهر کنار خواهرش نیست پدر کنار فرزندش نیست دیگه چه برسه به برادر و خواهر حالا چه برسه به جامعه و مجتمع مردم همسایه و همسایه همسایه همسایه رو نمیشناسه اساس اصله یهودیه خدا درس می‌کنه دیگه آبش یاد کن به همسایه ها ببری میره به همسایه یهودیش می‌بوده کرامر رسول الله صلی الله علیه و, و آله ببین ساعتش رو ببین اخلاقش رو ببین یهودیه میخواد سنگ بند بکنه روی فرق سرش بزنه اونو ترور بکنه خلا درست میکنید که همش یهودی ببر این همصحبتی دستی رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به خلق الله نسبت به خلق و تمامی خلق که فقط تنها با گفتیم فقط با مسلمان ها حتی با غیر مسلمان حتی با یهودی و مشرکش فرقی نمی گذاشت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفیق بود با همه رفق داشت مهربان بود رسول الله صلی الله علیه و سلم و این از اوصاف نیکه چیزی هست که الله جل و علا از تمامی مؤمنان میخواد خواد انما المؤمنون اخوه این اخوته هست که الله جلب و علا رفیق پویه بو بودن هم صحبت بودن یار و یاور بودن کنار هم دیگر ایستادن بریم سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله رو زمانی که هجرت می‌کنه مهاجرین میاد به مدینه انصار چکار کار چرا انصار یاد و نامشون بالا نظر نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و نزد الله جل و علا چیکار کردن مگر انصار مهاجرین که ما در مکه خونه و کاشان نداشتیم بیا مهمان من دیگه نه خونه مال خودت اصلا خودشه نفس می‌کرد این برای تو این برای تو خود رسول الله صلی الله علیه و آله منزی نداشت صحابی میاد میگه تو بالا رسول الله منم پایین تمامی اصحاب جديد بودن حالا کسی خونش جا به مهمون باز نمی کنه دیگه چه برسه که بخواد الان بگه آخ خونه من به بابا برادرم خونه نداره تو ارث و میراثا برید بین خوهر و برادر به خونه هم دیگه تشنن اینا برادر فاهر نبودن ولی ایمان بین اونها اخوت و برادری ساخت مال و مانالشون تقسیم کردن بین خودشون و مهاجرین انصار اینجا هست که الله جل و علا از اونها اعلان رضایت میکنه رضی الله و عنه و بخونید واسهشون الله جل وعلا میگه محمد رسول الله والذین الی که واسهشون میکنه که در تورات برید بخونید در کتاب پیشین بخونید که واسهشون چی اومده. اونایی گفتم اینجا واسه رسول الله صلی الله علیه و خب یارانش هم چنین بودن چنین یاد گرفته بودن. 21 و این واس مراه و بدیه با اون نرمیش حیبت داشت. با اون حیبت داشت. هر کسی که اون رو میده ازش هیبت می‌برد. خوستان واقته یک دفعه کسی رو میدید یک دفعه اومده چهرهی رسول الله صلی الله علیه و دل خود زن میاد بس برای رسول الله صلی الله علیه و آله از چهرهش اون خوستان رگی که تو پیشونش بود انگار که مثلا حالا مجرای خونی رگی که وسط ابروهاش بود مشخص بود که رسول الله صلی الله جدیتی به خودش داره یک چهره مزاح چهره و نمیدونم نرمی نه جدیتی تو چهرهش بود به خاطر همین کسی که یک دفعه رو میدید هیبت ازش میبرد هر این حیبته الله جل و علا در قلب ها میگذره. که رسول الله صل الله علیه و به میفرمایند نصرت از بر رویک از نصرت‌هایی که رسول الله صل الله علیه و دارند و همچین اصحاب یارانش و پیروانش نصرت با رو به وحشته که در دل دوشمنانه دشمنان از آنها میترسن. از رسول الله صل الله علیه و حیبت داره. همچنین گفتم از یارانش و پیروانش حیبت میده بهت التزامت به دین پایبندیت. هر چقدر با الله جل و علا تر بشی پایبند به سنت بیشتر بشی. رعب وحشتی که اون دشمنه الله که شیطان در برش وحی میکنه و شیطان بر قلب و دلش چیره است رؤى وحشت اون نسبت به تو که صاحب سنتی التزام داری پایبند به دین الهی رؤى وحشت اون طرف خسمتو دشمنتو بیشتر میشه و این چیزی هست که الله جل جلاله گفتو شد در دل مخالفین و معاندین اسلام 22 ومی رس که در این حدیث اومده و من خالته معرفت احبه کسی که باش مجالست داشته باشه نشاست برخواست داشته باشه با حرفش باشینه نرمی درش میبینه، خوش رفتاری درش میبینه شیفتش میشه. محبت رسول الله صلی و آله بردلش مییجینه. من الله لنذ له، رحمت الله بود. و اون نرمیش سبب میشد که همه دور برش جمع بشن. ولو کنت فضن غليظ القلب، لنفض من حولك، لكنت بودی تن مزاج بودی که بودی همه از فراری میشدن. نه. رسول الله اون رحمتش، اون شفقتش، اون مهربانیش سبب میشد اون کرم و که همه دور برش جمع بشن. نهی که جنب بشن مجرد جمع شدن به خاطر مصلحت دنیوی نه پول نداره که رسول اعظم کسی بده احساسات است کس اگر می اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و وسلم به خاطر پول نبود دنیا نبود چون رسول الله صلی الله و وسلم تاجر که ثروت مند پولداری که نبود که بخواد پادشاهی نبود که مال و منال داشته باشه بی اینو بده اگر دوستش داشتن از دل دوستش داشتن نه به خاطر پولش از دل دوستش داشتن به خاطر اخلاقش به خاطر مرامش به خاطر وفاش خاطر مهربانیش شیفته‌ی اخلاقش می‌شدن، مروتش، شخصیتش، شیفته ایمانش و تقواش و پرهیزگاریش می‌شدن. این شیفتگی رو شما در اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و آله می‌بینید نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله. حسین در جنگ‌ها و غزواتی که داشتن، این قضیه قشنگ لمس میشه. ولی حسین که قبلا یاد کردم دیگه از جنگ بدر اون دو تا جوان معاذ و معوذ ابن عفراء، زمانی که عبدالرحمن بن عوف میگه کنار خودم دیدم دو تا بچه سال 13 سال 14 ساله گفتم خدا مرا اینجو انداخته به دو تا نوجوان و جوان خودمو کوچک دیدم یعنی دو تا نوجوان کنارم میگه دیدم که بغل میگه ابو جهلی که رسول الله صلی الله علیه و آزار میداد میشناسی جدیتی میبره در این نوجوان شجاعت و شخامتی میبینه به خاطر چی به نظر شما ابو جهل رسول الله علیه و سلام میشناسی می می که آزار میداد پیغمبر الله را. علیه الصلاه چپم نگاه کردم برادرشه یکم از این کوچیکتره اونم بهم میگه ابو رو میشناسی؟ که رسول الله صلی الله علیه و آله نه که حالا کوتکش زده و فلانش کرده نه دوشنام میداد. پیغمبر الله رو دوشنام داده؟ مثلا دعوا میشه تو ها تو مرز دعوا میکنن مثلا به مادرش چیزی میگه میگه به مادرم میگی محبت. این محبت با این محبتی که از دین و ایمان قابل قياس نیستا این اینجا یک غریزه هست ولی اینجا دیگه بالاتر از غریزه است اینجا دینه اینجا شهادته میخواد خودش رو به کشتن بده در امعركه دنبال ابو جهل میگرده که سرش رو بزنه این شهادت شجاعته برای دینه و این چیز محمودیه یعنی چیزی که الله جل و از ما میخواد 23ومی واسه که در این حدیث اومده یقولنا ایتو من کسی که نعته شو کنه واسه میکنه علی نبی طالق لم ارى قبله ولا بعده مثله لقد بعدش هیچ کسی از زیبایی و جمال مثل رسول الله صلی ندیده هیچ کسی به زیبایی رسول الله صلی و نیست و نبوده هشتمین حدیث این حدیث به نسبت حدیث قبلی ضعف شدیده مثل قبلی نیست ولی خب سریع تایید می‌کنیم که از کنارش رد بشیم گفتین به که بعض از اصلاحات رو بدونیم چون اینکه بعضی از الفاظی که اومده هم در حدیث قبلی اومده و همچی در حدیث ما قبلش ولی خب سریع تایید می‌کنیم رد بشیم حالا علت ضعفش را فهم گفت بعد ازی که حدیث رو کامل خواهم خوندم هشتمين حديث همام الترمذي رحمه الله واسكن فسيحة جنات ميقويات حدثنا سفيان بن وكية قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولدي أبي هالة زوجي خديجة يكن أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن هابي وكان والصافا عن حيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه وإذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفمي مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عارف الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعة يخطو تكفيا ويمشي هون ذريع المشيه إذا مشى أنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لاقيا بالسلام إن حديث كان جديدهم هاس هل يجب أن يشترعوا خير طولهم الفرازينة كان جديدهم هاس ألا شيخ البني رحم الله هاميرا يكجاو ورد البته إن جو شيخ عبد تبقى كتاب قسمتي هذه روايات روورده ولكن قفتهم حديث دارش زعفة زعفة شمشتيدة اللات تزعفش؟ جميع من عمير زعفة زعفة شمشتيدة غير از دوتا مجهولة كتوين اسناد مثلا درسة سلي اسناد شما داريت اخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي اخبرني رجل مردي از بني تميم ما اقول مردكية مباد بدوني از مجهول ما روايدي مفازيني اللات دومشم بازم جهالته ديگري هم هستوش عن ابن لأ فرزندی از فرزندان ابو حاله خب کون فرزندش کی بوده مجهولین تو این اسناد هستن غیر از رابی ضعیفی که تو اسناد در نتیجه ضعف شدیده هرچند که مصادیق این روایت گفتیم تو روایت دیگه هست و قرائیم برش هست به خاطر همین ما ان الله اون چیزی که هست تو این متن خواهیم خون این وسرا حسن من علی هست رضی الله عنه که خودش شبیه ترین نه رسول الله صلی رسول الله حسنا خب رضی الله عنه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت میشه بچه بوده کم سنه سال بوده بزرگ که میشه میاد از دای خودش میپرسه دای شیری شیریشا برادر فاطمه هند ابن ابی حالا ربی پیغمبر علیه و سلام بود یعنی بچه خدیجه از شوهر قبلیش بود که در خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شده بود خدیجه از شوهر قبلیش بچه داشت یک از بچه هاش هند بود که میشه برادره کی برادر فاطمه هند هم اسم دختر هم اسم پسر. اینجا اسم مرده برادر فاطمه رضی الله عنها از مادرش هند ابن ابی حاله فرزند خدیج بنت خویلد رضی الله عنه مجمعی خب اینجا میاد حسن ابن علی رضی الله عنهما ما خاصتا از علی القصوص میاد از این دایش میپرسه چرا؟ چون این شخص وسافی بود دقت داشت در وصف چهره کردن وصف شمایل کردن این شخص دقت داشت در چهره شناسی مراته همین میاد ازش میپرسه که چهره رسول الله صلی الله علیه و آله رو برام وصفو میخواد با دقت بفهمه رسول الله صلی الله علیه و چه وصفی داشته خب اولین وصف ان حلیه النبی صلی الله علیه و میاد میپرسه که از جمال و زیباییش به من بگو رسول الله صلی الله علیه و چه وصفی زیبایی داشت خب خصوصا اینکه که جا حسن بن علی هم میگه و انا اشتهي ان فلی لی منها شیئا تعلقو به یه چیزی بگیرم تعلقو به یعنی اینکه یه یع علمی داشته نسبت به و یعنی یک چیزی داشته باشم که اون چهره ذهنم ثبت بشه شنوافت کامل را نسبت به رسول الله صلی الله علیه و داشته باشم گفتم یعنی هرچند که حسن الله عنهما چهرهش به رسول الله صلی الله علیه و الله عنه حدیث در لم یکن أحد اشبه بالنبي صلی الله من الحسن من علی رضي الله عنه لم يكن هیچ کسی از لحاظ به الله صلى الله عليه وسلم مثل حسن من علی رضی الله عنهما مرتب وجود میاد میپرسه مي وصفکم از طرفه نسبت به الله صلى الله تو این كان النبي صلی الله عليه وسلم الله الله فخم بود یعنی بزرگ بود یک عزمت و بزرگواری درش بود بزرگ مرتبه‌ای و بلند مرتبه‌ای توش بود صاحب حیبت و مظهر یعنی شخص تنومند با قدرت بود با توان بود مفخما اي معظما في صدور اصحاب یعنی هیبتش داشت الاصحابش بود یعنی همه ازش هیبت داشتن وقار و سنگینی داشت بر خودش یک وزدی بود بخوام این دو تا کلمه رو کنار هم دیگه بذاریم تو لغت فارسی فخما و مفخما یک شخص حزیم بزرگ مرتبه یه بلند پایه ای بلند سایه انجمنده بزرگوار با شکوه شریف و گرامی حالا هر چی از این اوصاف بزرگی ما میتونیم کنار هم دیگه بذاریم خیلی شرافت داشت شریف بود بزرگوار بود بزرگمنش بود بزرگ سایه بود وصف بزرگی و ارجمندیش بخوام بگیم هر چی بگیم کم گفتیم اون بزرگی گفتم آره از چه از شکل و حیبتش و مظهر الرسول صلی الله علیه و سلم که درش قدرت و عزت بود از اون عظمتی که در دل اون کسی بود که میومد باش هم نشیم میشد عزت رسول صلی الله علیه و سلم در دل دلش میافتاد اون عزت و بزرگی رسول صلی الله عليه و سلم قلبش بهش شیفت شد. یعنی با یک جلسه و یک نشست و برخواست دوم این واسه يتلئل وجهه تلئل القمر ليله البدری ترخشش و یک نوری در چهرهش نور بود رسول الله الله و سلم انگار که ماه تاباني دارمي درخشه محتابه محتابي كدارمي درخشه اطول من المرغور شخص مربعي در الزربي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى قدش بلان بود رسول الله عليه وسلم ولی خب گفتیم درازش خیلی زیاد نبود و من المشذب اقصر من المشذب دیدید بعضی ها لاغران قدشون بلنده رسولا سلام چارشونه بود بلند بود ولی اون لاغر باریک نبود <uggle> لاغر باریک نبود قدش بلند بود رسولا سلام ولی نه اون شخصی که بلند درازه و باریکه یعنی به خنان شونه هاش هم درش اون چارشونگی و اون درشتی نیست رسولا سلام گفتیم یعنی یک عظمتی تو هیکلش بود هیکلی جسهی تنومند داشت بزرگ داشت و قدش هم بلند ولی خب نزی عظیم الهامه هامه یعنی سر رسول الله صلی و بزرگ بود سرش کوچک نبود رجل شعر اندتف داشت ان موهاش موهاش نه تا افت قبلا داشتیم نگفتیم موهاش لخته بود موهاش فرریز و زی زیاد ان انفرقت حقیقته فرقها حقیق شعر موهاس اگر جا داشت اگر موهاش بلند بود مواش زیاد بلند بود رسول الله صلی الله علیه و آله چه کار می‌کرد به دو طرفش می‌انداخت یک فرقی را وسط سرش می‌ذاو یا الا فلا الا موهاشو گفتیم به عقب می‌انداخت گاهی از وسط فرقش می‌کرد گاهی نه به عقب می‌برد عموتور که ابن قیم در زادم میگه میگه و کان اولا یسدل شعره ثم فرقه بل موشو همطور رها میکرد میگه بعداً فرقی انداخت رسول الله صلی الله علیه و آله میانه موهاش حالا خصوصاً قبلا داشتیم تو وصف موهای رسول الله صلی الله علیه و آله گاهی این موها تا لاله گوشش می‌اومد گاهی تا روی دوشش و گاهی روی دوشاش می‌اومد گاهی تا لاله گوشنی مواش کوتاه بود و گاهی هم تا سرشونه هاش و گاهی رویشونه هاش خیلی زیاد بلند میشد. اینها بهش میگن سنن فطری بهش میگن یعنی سنتی نیست که مثلا که شما بگید که مثلا مو بلند کردن پس سنت چون موهای رسول آساسم بلند بوده نه ابو جهل و خیرم موهاشون بلند بود رسم و رسوم موقع هست حالا نوع لباس پوشیدنشون و نوع بنان کردن موها خصوصا موهای سر اما مثلا بعضی جاها هست نه دیدگاه تعبدی مثل ریش گذاشتن اینا ها دیگه خلاص وخالف المجوس مخالفت با مجوس حالا زمان عوض شده حالا نمیدونم مجوسی نیست اینا نه تماشا رفت راست اصلا من گفته نشانه مومن ریش گذاشتن و خود رسول الله هم ریش بزرگی داشتن و توصی می به ریش داشتن ولی مو نه مو جز تقالیده راپتی به سنت نداره که تو دیدگاه سنت بهش بگیره میگه بی ثواب داره پس موهاو بلند کنیم نه خود رسول الله صلی الله علیه و آله اصلا کوتاه و گاهی بلند بود و گاهی هم تیغ میزد زمانی که به حج می‌رفت یا صلح حدیبیه زمانی که خواستم بره گردن که قبلا یاد شد یو جاوزو شعرهو شحمه اذنيه اذا هو وفر زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله رها می‌کرد گفتیم گاهی از لاله گوشش هم پایین می اومد روی دوشش هم میومد از هر لول گفتیم از رنگ پوست رسول الله صلی درش سفیدی مایل به قرمزی یا سبزیگی بود یعنی سفیدی خالص نبود واسع جبین جبین پیشانی هست پیشانی بلندی داشت عریضی داشت پیشانی رسلاس بلند و عریض بود ازجل حواجب حواجب استخان زیر ابرو و گشتی که روی این استخان ابرو هست و خود سه تا چیزا با اون استخان پاین این عبرو ها گفته میشه پاجب؟ و اون گوشته هم که روی بالای چشم هم بهش میگن حاجب و این موی هم که روی این تیکه استخونه بالای چشم هم بهش میگن چی؟ حاجب ابرو. اینا ستا هسته رسول الله صلی الله علیه و سلم اون ابرویی که اون از گوشت استخونه مویی که بالای چشمش واش بود، ظریف بود. بزرگ، درشت نبود. بلکه ابروی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ باریک، کشیده، دقیق و کامل غیر پیوسته. بس بچی عبروی رسول الله صلی الله علیه و آله رسمت او سخن و گوشتی که بالای چشمشه رسول الله صلی الله علیه و گنده و بزرگ نبود بلکه کشیده و دقیق بود حالا قسم گفتم این در بعض از دیگه هم این قضیه را تقویت میکنه قسم وصف رسول الله صلی الله و سوابق عبروی رسول الله صلی الله کامل بود یعنی نبود که مثلا بعضی عبروها مثلا یک تیکه رفته باشه یا مو نداشته باشه یا یک قسمتی مو داشته باشه نه نه کشیده بود کل چشمشو در میگرفت می گرفت چون بعضی اصلا ابروهاشون کوچیکه نه رسول الله صلی الله علیه و کشیده دراز و باریک بود دقیق بود فی غیر قرن فی غیر قرن القرن پیوستگی هست ابروی رسول الله صلی الله علیه و پیوسته نبود مثل کسی که ابروهاش به هم دیگه وصله پیوسته هست ما قرن داریم مقرون یعنی ابروها به هم دیگه وصلن و ابلج داریم کسی که میان ابروهاش خالی از مو هست رسول الله صلی الله علیه و اینجا در اینجا وصفی که اومده ابروهایش به همدیگه پیوسته وصل نبود بلکه اینجا در وسطش میکنه ببین هما عرقن یدره الغضب میان این ابروها رگی را میدیدی انگار که رسول الله صلی الله علیه و سلم باو جدیتش خشغینه یعنی یک خشم در چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم بود حالا گفتم این جدیت الان میتونیم در اصلاح امروز خودمون ببینیم اون رگ خونی که وسط این ابروها بود این رگای خونی که به پیشانی میره این قشنگ میان دو تا ابروها اون رگای خونی را میدیدی اقنا العرنين القنا این بس بینی رسول الله صلی الله عليه وسلم. بحسب درازیه بینیرا رسول الله صلی الله عليه وسلم. نبوري کیش. رسول الله صلی اللہ يعني رسول الله عليه وسلم بینیش بلند بود. اقلان عرنين عرنين بینیهاس. راکون من بلندی و دروشیشه. یعنی بینی سازست. ابلند بود. خصوصاً استخوانی که از بالامیاد استخوان بلندی بود. نقلامیه. نبوري که. خصوصاً اینجا هم خودش در دنبال حدیث میگه. يحسبه من لم کسی که نمیشناخت با دقت نگاه نمی کرد فکر می کرد بینی رسول الله صلی الله علیه و باریکه به خاطر اون نور که در چهره رسول الله صلی الله بود این ملاحظه نمیکرد اون بلندی بینی رسول الله صلی الله و اون اسخون بندی که داشت اسخونش یعنی گوشخونه باریکی نبود خصوصا وصف پرهای بینی رسول الله صلی الله میکنه یعنی پرهای بینی هم که به دو طرف بود یک نوری را به چهره رسول الله صلی الله و با اون باریکی خصوصا بغلش بود به طور رست شده بود که علاوه بر بینی رسول الله صلی الله علیه و سلم که اون برجستگی که روی بینی یا بغل‌های بینی باشه ملاحظه نمی‌شد یعنی یک بینی منسجم بلندی و درشتی داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم همخونی داشت اون بلندیش و اون درازیش با اون بغل‌های بینی رسول الله صلی الله علیه و سلم و برمی‌بسه ریشاش ریشاش پرپوش بود حتی صحابی هم میگه ما در نوازه سری می رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا ریشاش تکون می کنه می که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره چی قرآن تلاوت می کنه ریشاش پرپوش بود و این گفتیم هدیه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می کرد اعفو دستور میداد اعفو لها ریش بزرگیت ریش هیبت مرده ریش رو الله جل وعلا دستور، به خاطر همین شرع کرده و به خاطر همین بر رسول الله دستور داده که ریش بذاره و بر رسول الله دستور داده و اصحاب و یارانش که ریش بزنند. چهرهی محمودیه از تواضع از رضایت به خلق الله الله جل وعلا گذاشته رضایت به خلق الله، رضایت به تقدیر، رضایت به تصویر. الله مرا را با این تصویر ساخته. خدا خلقنا الانسان في احسن تقويم فاحسن صورك الله بزیبوی چهره ای شما را راسته کرده ساخت عدم رضایته دستکاری تو خلق الله جل وعلا نشانه عدم رضایته این ناخوشنویدی در مقابل این خلق تو دوست نداری اون چهره که الله تو را برای اونا راسته کرده نارضایتیه پدر هم پیامبر صلی الله علیه و توصیه میکرد ای مردان ریش بگذارید ای مردان ریش بگذارید سهل الخدن گوناش رسول الله کشیده مثلا بذایی هم صاحب فکر میکنن که مثلا گونه مثلا اسیب توش گزارن گندش بکنن بعد بکنن سبحان الله این وصف و جمالی که از رسول الله ص در یاد میشه چیز دیگه هست یعنی خلق خدا بخواد توش دستکاری بکنی مثلا دیدید که بعضی ها گونه هاشون اینطوری براماده میکنن انگار که زنبوری زده زیر چشاشو سچتی زیبایی تو اینه خصوصا تو چهره گونه های کشیده رسول الله گونه های کشیده داشت گونه هاش بلند بود برجسته نبود ظلیع الفم الله اکبر رسول الله صلی الله علیه و آله دهنش بزرگ بود کوچک نبود الان یکی از زیبایی هایی که الان خسن زنها دنبالشن سوزنه ژل میزنن زیر دهانشون یا ماده ای می میزنن که این دهانشون گنده بشه رسول الله صلی الله علیه و این جوری او را و بود دهان رسول الله صلی علیه بزرگ بود هم کشیده هم بزرگ باشه مفلج الاسنان میان دندان هاش فاصله بود ردیف بود ا من کرده کسی به خاطر زیبایی این کارو بکنه ولی الله جلاله این اینطور خودش رو آفریده بود نه اینکه خودش از عمد بره خودش رو زیبا بکنه نه همینطوری الله او را بود اون توازنی که بین دندان هاش بود و سافی و مرتب بودن میان دندان هاش کسی بخواد از عمد بخواد این کار رو بکنه گناه کار میشه چون تغییر خلق الله جلله والا که در حدیث داریم را نه ع میکنه لع الله نام سوال متن والواصله، والمستوسله، مستوسه واشه وال مستوشمه وال متفلجات المغیقات خلقله خدا لعنت بکنه. الله لعنت میکن کسی که ابروش رو بر میدارره زنی که ابروش رو بر میده و کسی ابش رو بر میداره. کسی که خالکو میکنه کسی که خال بر خودش می کوه. کسی که مو میذاره و کسی که مو میذاره و کسی که میان دندان ها فاصله میذاه. الله همه اینها را لعنت بکن. اونایی که الله را عوض میکنه. چه مردش چه زنشورقی نمیکنه چون بیشتر زنای این کار انجام میدن اینجا لعن به نسبت زن آمده. دقیقل مصربح. قبلا داشتیم موهای های جلو سیناش حد وسط بود فقط وسط سیناش مو بود موی کمی پایین اووم به طرفش کمش که ان جید و فی صفاء ال الله که گردن راب بلند بود. انگار یک عاجی از زیبایی عاج دیدید که عاج فیل خصوصا قبلا زمان های قدیم بد پراب میومده باش بود می ساختن میکوبیدن و میتراشیدنش. زیباش میکردن یک برق و یک حسین آج فیل که اون سفیدی برش غالبه خب اینجا تشبیه میکنه گردن رسول اساس سلام به ناز بلندیش و اون توازونی که در گردن رسول اساس بود و درشتی گردنش و و اون نوری که حسین از گردن رسال میدیدن از درخششش و زیباییش حسین داره تشبیه میکنه به سفیدی و درخشش اون آج و همچنین تشبيه رنگش میکنه با اون درخششش به نقره انگار نقره هست از درخششش داره برق میذاره معتدل الخلق کل چهره الرسول صلی الله علیه و آراسته بود معتدل بود متوسط بود نه گردنش زیاد بلند نه کوتاه سر و اساسا نه کامل گرد و نه هم کامل کشیده تن رسول صلی الله علیه و قد و قواره اش همین طور همه ی واسه رسول صلی الله علیه و آله چی است بسد توازن بدن متماسک بدن داشت رسول الله صلی الله نبود ولی چاق نبود ضعیف و لاغر هم نبود ولی هم چاق و چله که نتونی خودشو بلند بکن نه بدنی آراسته و سنگین داشت استخوبدیدی درشتی داشت که قبلا داشتین چنانچه در وصف علی بن نبی تبارک و تعالی بگذشت ولن بكم بالمطهم سلام چاق نبود ولی که پر بود از ناز جسمی شخص ضعیفی نبود شخص چاق و گوشتی هم نبود سواء البطن والصدر سینه و شکمش صاف بود شکم گنده نبود سینه و شکم و هم دیگه صاف بود متساوی بود عریض الصدر سیناش هم پهن بود باس بود های عریزی داشت غیر از اون شونه‌هاش بعید و ما بین المنکبینی زخم کرادیسی که قبلا داشتیم بین هاش فاصله بود یعنی چارشونه بود عریض بود هاش و استخونبندی دست‌هاش مفصل‌هاش هم بزرگ بود درش بود انور المتجرد کل اعضاش چون کم بود درخشش درش بود نورانی بود حزای بدنش به خاطر کم و به خاطر سفیدی پوستش موصول ما بین لبتی و سردتی به شعر نیجری خط از سینه ها تا ناف رسول الله صلی وسلم بود مثل یک خط باریک موی کم موی زیاد نبود عارف ثدین و البطن روی شکمش و روی پسان هاک هم زن دار هم مرد دار روی این دوتا قسمت موی دیگه نبود عاری از موی بود اشعر و ذراعین و الملنکبین و عالی صدر موی داشت روی دست روی شنهاش و پلای سیناش ولی گفتیم اون مهم کم بودی هنی و از زندین، از زندین ساق دسته پای ندست ساق دست راستش هم بلند بود ساق بلندی داشت ساق دستش دراز بود نشانه زور هست قدرت او دستش کوتاه نبود دستش دروش بود رحبو آراها رحب الراحه الراحه کف دست رحب هنی پهن بود دف دستش پهن بود دروش بود و پهن بود شفن الكفين والقدمين پنج پاها وكف دست رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لطافت درش بود هم بلندي و درشتي الله حسن در روايت ديگه هم خواهد اومد سائل الاطراف او شائل الاطراف يعني ان گوشه دست رسول الله صلى الله عليه وسلم بلند بود کوتاه نبودن گوشه دست و پاش غير از اون بلندي گفتيم درشتي هم درش بود درشتن بود خمسان الاخمصين الاخمص ان گودي كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف پاش خصوصا وقتی که جایی که پاشو به زمین رسول الله الله علیه و سلم از زمین بلند نمیشد پاش یعنی به اونطوری که خصوصا در راه رفتن کل پاش به زمین نمی اومد که پاش فرش بشه روی زمین بلکه قسمتی از پاهای رسول الله الله علیه و سلم روی زمین میذاشت خصوصا وقتی که راه میرفت، اول پشت پا رو میزد بعد جلوی پا حالا میاد در وصف پاهای رسول الله صلی علیه و سلم مثلا حتی در نوع پوست پای رسول الله صلی الله علیه و سلم که در دنبالش میگه مسیح القدمین ینبو بو عنهما هیچ ترکی روی پوست پای رسول الله هم نبود و هیچ تورفتگی هم نداشت یعنی پاهای رسول الله ص صم صاف بود ترکی نداشت مثل پوست بعضی از اشخاص در هوای خشک ترک برمی دارن هوای مدینه هم خوش بود مکه هم می توره اونجا بالاخره من دیدم اونجا بودم پاها ترک برمی دارن ولی رسول الله ص به خاطر نرمی پوستش و که توی پوستش بود ترکی توی پاش نبود آبم اگر میریختی آب روش جم نمی شود. یا آبی مثلا فوراً اگر میریختی، اون آب سر می خورد اون آب جاری می شد بر روی پاش به خاطر اون صافی که در پاهاش بود مسیح القدمی یعنی پاهاش هیچ تشققی هیچ شکافی نداشت ین بو عنهم الما یعنی اینکه که آب روش قرار نمی گرف خمسان لخمصیر اینجا خصوصاً که بخوام وصفش بکنیم این گودید. کف گ رسول صلی الله علیه و این گودی پاش. نه یا خیلی زیاد این گودی زیاد بود نه هم صاف بود کفه پاش کفه پای رسول الله یعنی دو تا کف پای صلی الله علیه و طوری نبود که صاف باشه که کل پاش بخوره و نه هم این که زیاد این تو رفتگی زیاد باشه متوسط همه اون وصف جسمی رسول الله سلم درش این وسطیت هست زال زال که راه می‌رفت گفتیم وصف قلوع اومده یعنی رسول الله صلی الله علیه و انگار که از زمین خودش داره میکنه با قدرت داره از زمین بلند میشه پاشو با قوت و قدرت بلند می کرد دو تکفیه که قابل داشتیم رسول الله صلی الله علیه و وقتی که پا میذاش انگار که از سرازیری یا سراشیبی میاد به پایین میمشی هون نوع راه رفتن رسول الله با وقار و هیبت بود بدون عجلگی بدون هر و رفتن و شتاب زدگی ها. نه بلکه رسول الله صلی الله علیه و قدم های بلندی میذاشت با وقار با شخصیات با اون توازن و با اون قدرتی که راه میرفت رفت ذریع المشیه ذریع المشیه یعنی قدم های رسول بزرگ بود قدمی کوتاه بر نمی داشت بین قدم هاش فاصله بود اذا که كانما ينحط من سبب قبلنا هم داشتیم انگار که از شریبی داره میاد پایین و اذا التفت التفت جامعه که قبلا در روایت قبلی هم داشتیم اگر هم و چرخ میداد رسول الله صلی الله علیه و با کل بدنش رو به طرف شخص می ایستاد خافض همیشه وقتی که راه می رسول الله صلی الله علیه و آله چشمش به پایین بود. نظره او به ارض طولانی‌تر من نظره سما. چشمش به زمین بیشتر از چشمش بالا بود. جل نظره ی ملاحظه، بیشتر نگاوش ملاحظه است. یعنی دقت اونطوری که مثلا شخص حریص باشه که بالا ببینه که چی و چی شده نه. رسول الله اصلا نگاهش یک نگاه ملاحظه آمیز بود. یسوق اصحابه رسول الله صلی الله علیه و زمانی که راه می رفت، جلو نمی رفت. سعی می‌کرد یا کنار اصحابش یا از پشت سر بیاد باهاشون. چنانچه در سنه نبی داریم چنین اومده در حدیث و کانا فی سفر فی ساقه اصحابه یعنی در یک سفری صحابی میکرد بر رسول الله صلی اللہ بودم رسول الله صلی از عقب میومد پشت سر اصحابش یز جید ضعیف با اون ضعیف قومی که تو سفر بود همراهی میکرد و یردفو و یدعو لهم هم کمکشون میکرد یاریشون میداد هم دعا براشون میکرد این رسول الله صلی همیشه اینطور که تون بره گاهی ملاحظه میکرد حسن تو سفرهاش اون شخصی که ضعیف هست آخرین این که تو این حدیث اومده یا بدر بمن لقیا بالسلام ان کی اگر کسی چ بزرگ چ کوچیکش هر کسی را میدید خود رسول الله صلی الله علیه و سلام شروع میکرد به سلام کردن این از اوصاف رسول الله صلی الله علیه و چنانچه در حدیث دیگر اومده اینجا هم در این روایت به اشاره شده بیشتر این اوصافی که شما داشتید در حدیث ما قبلا داشتید و بذات دوباره شاید بعضی هاشون تکرار بشه ولی مباحث و مباحث دیگری خواهیم داشت اول ساعت شد گفتیم اینجا از باب تأکید بر اون مسائل قبلی اینجا بهش اشاره کردیم ولی خب اینطوری نیست که دیگه همه همین باشه نه انشاء مباحث دیگری خواهیم داشت و چیزهای دیگری رو یاد خواهیم گرفت مهمترین چیزی که برای ما مهمه در این درس ها خصوصا درس این در این دوتا حدیثی که خوندیم بحث اخلاق و رفتار رسول الله صلی الله و اون بزرگمنشیش و اون شخصیت وقارش و اون انشراح صدرش که کافی گواه الله برش علم نشرح لکسادرک و این نعمتی بود و این نعمت هم انسان میتونه خودش و برش راسته بکنه و هست به ما همین چنین باشیم هدف از این درس همینه که بدونیم الله جلد و علا چی دوست داره اون چنان باشیم الله چی دوست داره الله سعد صدر رو دوست داره الله انشراح صدر رو دوست داره الله سینه باز الله جل وعلا بخشش كرام وخشغي خشبركور دلو ديسر انا باديوات بشيري ماذا رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحانك الله وحمدك سبحان الله وحمده وصلا على محمد وعلى على محمد